دانا بپرسید کاباد شهر کدام از تو موضوع چی داریم بر؟ چون این داد پاسخ آباد جای زداد جهاندار باشد بکنی. خداوند جان و خیلید که این برتر اندیشه برمکنه سلام از میکنم خدمتون خدمت شما شنوندگان عزیز که در همه کشور در اکثر نوقات کشور در برف و بارون و این برکت خداوند داره میباره و شما با سرما داریم زندگی میکنی یک گرده سرده هباب و خلاص موازه باشین اشترا سرما نخورید حسابی مراقب خودتون باشین و برنامه ما رو بشنوید برنامه امشب ما همطور که همه منتظر هستید در پیامه خوب. همان یک ساعت قبل اومده و تمام سلام رسوندن واسه استاد جنیدی استاد جنیدی عزیز استاد سیدون جنیدی عزیز ما هستند و درباره شاهنامه فردوسی صحبت میکنن و اگر هم kursi دارید یه هستی خیلی خوش به تو یاد کردیم همین چند وقت پیش سلام کردیم خالص ما شما ما دادید به درود نه من خواستم یه چیزی بگم گفتم سلام علیکم بکنم باشم قدیم این طور بود بزرگتر خانواده پدر خانواده میشه سپورکورتی همه میشه شاهنامه میخوند شانه میخوندن و ما میخوایم این فضا باشه این سنت این صحبت ها باشه در این فضای خانوادگی در خانواده بزرگ ایران یعنی من گمان دارم که این برنامه این کار رو داره انجام این خیشکاری یعنی وظیفه رو به انجام می رسونه که خانواده بزرگ ایران رو گرد کرمای جانبخش شانامه جمع بکنه و همه ما با هم شانامه بخونیم و از بزرگی بزرگواری و گذشت و فدرکاری راستی ها درستی ها پیمانداری برخوردار بشیم و بر بنیاد اون زندگی آینده خودمون رنگ ببخشیم این حرف بسیار زیبا و بهشی بزرگ خداوند گرامه می داریم همه ما سپاس باشیم همه درد در و جون یادوبره مهربانی ها خداوند باشیم که در پایان همه امید ها بوست اینجا بود که می‌خواستم بگم شاهنامه فردوسی گرمایی به جان ما می ده. این دارستان گرمای ها گرمایی به جان ما می ده. بی خودم نبود اون بحانه بود شاید اون اصل اون دور هم بوده, هم بوده. شما جمعه فرمود بیرون صحبت کردید فرموید جمعه دلیجان یا همون دلیگان بودید دلیگون دلیگون به لجه تهرانی یا اصفهانی شده دلیجان آه. که نادرسته دلیگون در دلیگون بودم من مهمان آیه استاد سفری بودم که نویسنده خیلی, خیلی خیلی خوب و پجوشکل دلیگون هست تا حالا سه کتاب منچه کرده به وسیله بنیاد نیشو اولین کتابش زمانی بود که ایشون دانشجو بود و فاصله بین تهران و قزمی رو میپیمود و میمد و یک هم کتابش گم شد و این حال با کوشش بسیار خوبه دراز هنگ این کار رو با سامان رسیدوند و من هم البته یاری کردم و میراش کردم جالب این که بر اون کتاب من چهت سطح پیش دارد نمیشتم و این چه یعنی از که به هیچ وجه شناسی به شیوه‌ی غربی به دوشنهاه مانعان نمی‌کنه. یعنی یک گونه زبان شناسی پدید آوردند، اختراع کردم که همه جا روبه زعف ایران داره و یعنی داره می‌تونه اروپا رو گل کنه اما خب ما این کار رو در بندی این کردیم. یک کتابی کتاب دیگه بازه نامه فرانگی بود یه بسیار خوب است در هشیکهای کشان. بر اون هم من چهل صفحه پیشگفتار نمیشم عدیدگاه های فرهنگ ایرانی و یک کار بسیار بزرگی دیگه کردیم که اگرچه کارش خودش کوچکه فرهنگ رومانو این کار حدود چهل صفحه بیشتر نیست در قطعه اما من حدود صفحه بر اون پیشگفتار نمیشم جمع این پیشگفتار پیرامون ثبت صفحه میشه اگر بر آینده پیش بیاد و من بتونم یک کتابی خواهم نوشت که به عنوان زبان از یگاه ایرانی. نحی میکنه تنگ نظری ها اروپایی رو و نحی میکنه کسانی که در این آب خاک ساده میشن و از دیدگاه اروپایی فرهنگ و زبان خودشون رو در و بردار میخوان جللو بدم. در هر صورت پریروت ها به مستوری ندارد، در بندی سر از روزن در زبان فارسی خودش کار خود رو انجام میده. در هر صورت اونجا منزل آقای سفری که بودیم، دختر دوازه سالهی داره بسیار باهوش و تیزنگر بالا آقای سفری میگفت که میترا میاد، رادیو روشن میکنه و میگه تلویزیون موقوف همه کار موقوف بیاید صحبت استاد رو گوش کنه خب اداتی میدره از وقتی به دنیا آماده گاهگاه من دیره همطور تو بزرگ شده و بعد اونجا من شیندم یه خانم دبیریه در دوره راهنمایی به همه دانش دا آموزانش توصیه میکنه که اگر میخواد فرهنگ ایران رو بشناسید و زبان فارسی رو این برنامه تنجره های رو که در خواندن شماره رو پیگیری بکنید من خیلی از شرکت در اون جمع خانوادگی دلیگونه خوشحال شدم و دیدم که بالاخره ملت ایران داره تمنجم میکنه به افتخارات بزرگ فرهنگیش و همین تن که از اگر ما بیدار بشیم و خوشیدهای روشن زندگی این رو ببینیم اون نورها و اون فروغها ما رو رهنمون خواهد شد بسیار یک زندگی بسیار رخشان خوب در آینده با امیده, خدا. از با امیده خدا گفتم پرمک ها اومده فقط این که رسید بعد از اینکه که شما این شعر آغازین رو خوندید پرسیدن این جهاندار منظور چه بودی توضیح در مورد این شعر بفرمایید این شعر گفتار شهربان بزرگ مهر بختکانه که ازش پرسیده میشه که شهر آباد کدومه و بهره ما از اون شهر آباد چیست بزرگ پاسخ میده که شهر یعنی کشور رو شهر رو یعنی کشور که به منی حالا شهر یه گوشی از کشور هم اطلاق میشه کشور آباد اون کشور آباده که پادشاهی داد داشته دولت داشت گوشی پادشاه از زبان با باستان این اعتقاد بوده که اگر پادشاهان به یاد خدا باشند و با, با مهر بر ایرانیان یا نیبره کشور افتخار کنند و ما رو فرزند خودشون بدونن خداوند هم درهای کشایش خودش رو گوشوده می دارد و مردم رو از بارانو برف به هنگام بحره می رسن ما تدامه برنامه رو در همین آقاد از کنم تو یادم نرفته 220 485 220 485 220 588 2-0 دویست و بیست، و هشتاد و هشت، دو صفر و که سی هزار و و هشت، سی هزار و و که خسرو هست، نبرد ایران و توران، کتاب چندان رویه چهارصد و شیست فرمودی؟ از دفتر دوم. از دفتر دوم، پس در شاهنامه که بیرایش خود دکتر اوشااد جنیدی هست دفتر دوم روی چهصد۶ نقد پولادون در شاهمه های دیگه اگر دارید میتونید بگید و این بخش رو پیدا بکنید پادشاهی که خسرو رو یا و مطلب دیگه پایای تلاررسانی ما dot رادیو فرهنگ هست. و از طریق موخواره هم میتونید علاوه که خواداست از کشور اقوامشون دوستان آشنایان هستند حتما سفارش کنی تلویزیون نبینن رو موخواره ی دارن رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و برنامه ی گروهه شبکه فرهنگ رو پیش بدن من وقتی که تلفن داشتم از سوئد خانم دکتر مریم خرروزی ایشون گفت که حدود 300 دانشوی ایرانی در اینجا که مویل هستن که من برم البته سوحنانه برشو بکنم که من به این که محتوان که دارم اما ایشون بکنم که دیویسی زدن همه این برنامه راژیو فرهنگ رو توصیح کردم و میگیرم روحات برد بس راژیو فرهنگ رو پیدا بکنن در بخش رادیوها ها و برنامه ما رو بشتوند یه پیانه کم اومده سلام اگر تمام اون بنشینم به پای داستان‌های شاهنامه رمز ها و آموزش نیاکان باز هم مشتاقم محمد رمدیده از ده عزیز حالا شما خوبه آقای با ان سلامت باشی که فروش خوبی بود بگو اینا قرآن تا 1487 خاموش شدوش امیدوارم خدا بس با شما با خانواده بزرگ ایران به میلش این پای صحبت های استاد جنیدی و داستان‌های شاهنامه بیاری از آن اگر بیاد داشته باشید که در انجمن معیستان توران صحبت شد و قرار شد که جمع بکنید و دنبالی داستان نام افراسیاب به پول بند دویر جهان را خاند و گفت که راز بزرگان به باید نوخت یکی نام نزدیکی پولات بند بیا رای از راز بخش رای بند بگویش که ما را چه آمد به سر؟ از این نام بر گرده الخاشنج چون به درست تو گردت تباه نیا با چه این مرز را همه مرز را رنگ زوگ است و بس تو باشند در این کار بر یاد کمر همه شیده ز پیش پدر فلستاد او بود و او نام در. به کردار آتش تبیم گذند بیامد به نزدیک پولاد بند و او آفرین کرد و نامه بداد همه کار رستم و او کرد یاد. کنارنگ یعنی پولاد بند جنگ آوران را بخواند به هر گونه ای داستان ها برند، به تا کوس بیرون برند، سراپرده او به خامون برند. آبینی یعنی گذند خودش را از آب روزدخانه گذند بیامد به نزدیک افراسی ها پذیرره شدند در ش ها یک سپاق تعبیره برآمده شاه. به بر بر گرفتش جهاندید مرد کار گذشته و یاد کرد. سخن را هر گونه افراسی آبزکار کار رنگ و زه وقت شتاب. به که رنج من از تن است که او را پرنگین پییاهن است. یعنی رستم. یا اون سفر دیگه راه دراز کنون چاره کار بود و بسازم. پرندیشه شد جان پولاد بند که بند را چون شود کار بند. یعنی چگونه اون بند را بکشاید؟ چون این داد پاسخ و که در جنگ چندین نباید شد. ایران است رستم که مازندران زندران کرد و بستد به گرزگران، به در رید فحروق دیل سفید، جگرگاه کولاد قندیگ و بید، مرا نیست پایاب با او بجنگ. نیارن به جنگ، به بد کردن آهنگ، ببخشید، مرا نیست پایاب با جنگ اوی، نیارم به بد کردن آهنگ اوی. اینجا میبینید که پولادوند سخن از نورد مازندران کن. اگر شما به خاطر داشته باشید، نورد مازندران عبارت رود از دوین ها، یعنی بلندی های البورز که به دست ایرانیان کم کم آماده گردید و سنگ را تراشیدند و به راه انداخت کنند یعنی راه کشیدند و جاده کشیدند تا بتونن از جنگل های پرخار و پرعبر فراز و کوها بگذارند و چراگاه های آن را به دست درن. این راه همزوگوش بود که یک بار شده خب حالا پولادوند داره فقط از این جریان صحبت میکنه. ما اینه که یک پولات رندم یک کوه یعنی کوه پولات که مهنم پولات درش هست خلا میریم جدوتر میبینیم بیاری ازم اینم اون رمزی که با این رمزی یکی در کجور میگه من پایاب, پایاب جنگ او رو ندارم پایاب یعنی طاقت من او رو, رو یکی چاره سازم به جنگ بگردم به سام پلنگ تو لشکر بر غول بر لشکرش به انبوح تاخیلی کرده سر آقالیدن یعنی کسی رو یا جانوری رو یا گروهی رو تشویق کردن به حمله کردن به یکی یک کنش فارسی که در, یک در چند تا حرفی مفهوم خیلی پرندی رو در خودش داره که از شاعران دوره نقص هست که من الان بیاد ندارم کدوم یکی از شاعران بود شاعران برا بود که منز آغالشت نترسم هیچ بر به من شیر رو بر آغالی. یعنی اگر شیر رو تشویق خونی که به من حمله بکنه من از اون نمی در حساب بر آغالی یا آغالیدن یعنی کسی یا کسانی یا جانوری رو تشویق کردن برای اینکه به کسی یورش ببره این زیبایی زبان و که با چندتا تا حرفی کنشی درست میکنه این ادگه سرده تلاش که برای غال و لشگرش و هموخ تا خیره در سرش همتن بپوشید برشید بیان نشرس از برای جند پیل جیان بیان اومد به نزدیک که پور دید و برسان و کوی بلند دیدید دیدی که من برق زدم چند چندین بیت افضاده بود ولی هم. سخنان و شانومه اینجا به دیگه پیغم داره. دوباره من اینو میخونم که به همتن بپوشید ببر بیان نشست از برشند فیلی جیان بیامد به نزدیکی که پول آدواند. در قریبا 25 بیت اینجا افضاده است ولی شما خودتون میبینید که گفتار فردوسی به همدیگه دیگه است. یعنی معلوم شبه اون افسوس است. حالا البته هر کدوم از اینا به چه دلیگه افسوس است اونها رو من دلپانه شر دادم. اما خود سخن اینطوری می میگه که این بیت درست پس از اون بید قرار داریم. بیا اومد به که پولادوند و را دید برسان کوهی بلند. این اون رمزی که بزن مرز کوه. کوه. پولادوند یه کوهی که حالا به دو گفت پولادوند دلیر جهان دیده و نام بردار و شیر نگه کن کنون آتش جنگ من کمند دو دل و زور و آهنگ من که از این پس نه آبیز شاهت نشان نه از نام و که یعنی میگنی دیگه که قصور رو و پهلوانان ایران رو نخویدید. به دو گفت که این مرد را از ما چه باشیم برخیره چندین بپای برخیره این بیهوده خیره از این بیهوده به کشتی گرفتن نهادند روی دو گرد صرف و دو جنگ جوی به پیمان که از هر دو روی سپاه بیاری نیاید کسی کی نخواه یعنی کشتی بینه همین پولاتند و راستند باشه مفهوم اینه گذر سپاه ایرانه از روی این کوهی که خیلی سخت گذر هست به قول اموزی ها هست کوه سخت گذر و تورانیان به این دارن که ایرانیان در این کوه تبایشن مثل موزندران مثل این بای چه شیده بر آل رستن بدید یکی باد از ایگر برکشید پدر را چنین گفت که این زورمند که خامی برا رستم دیو بند به نام و دوین داره اشاره میشه. دوین یعنی بلندی یعنی از اینجا میتوند. بدین بورز بالا و این درست برد به خواه کندر سر دیو این دیوه کرد یعنی دوینه یعنی پو، کوه پولادوند رو ازش خواهد گذشت. نبینی زیگردان ما جز گریز مکن خیره با چرخ دردان ستیز. دو گفت اگر دیو پول دیف تکرار میشه یعنی دوین یعنی کوه یعنی بر پرد کنندی آآدهون تخری نه دو یعنی دیف کوه دوین های مازنداران کوه های مازندار که برتری ای برترین این دوین ها دوین سفید که تمام باشه اینو بیشتر گفتیم حالا ممکنه که به مرور کشاندی که میت بند به این داستان ها اون رو نشیده باشن من رو یک واردگی اون متران میکن که. ایرانیان میخواستند که چراگاه مازندران رو به دشتهای مرکزی بیفزایند و مازندران تبرستان نیست چون تبرستان از زمان باستان اسمش همین تبرستان بوده ماز یعنی شکن یعنی کوههایی که شکن باشند و اتفاقا کوههای ماز از شرق کوه دماوند تا فیروزگو ادامه دارند من از یکی از دوستان که اهل افتر هست یک دوستان خیلی آبادی بالاتر از سنگسر سمیلان به دام آقای زیاری که هنوز پیر افتر اگر کسی کار خیلی مهمی میره انجام دادن جاده باشه بهش میگن که از ماز بالا رفته به این از این کوه های ماز رفتم از اینا خیلی مشکل بوده و ماز ها در حقیقت ایران نمیخواستن از اینا اینها دو سفید بوده که در حق تمام باش که با هموار برثبار بل را پیکر نشسته. و مبارزه دوبینی سفید هم یعنی دیل سفید هم با ایرانی این شب آمده که ابر شد تا به ما جهان گشتون روی سیاخ چون که دریقا از گفتی جهان همه روشنناویش گشته نهند سه گردون بسی سنگ بارید و سی س واردید و ه پراکنده گشتند ایران داشت. این درست دیشون میده که یک فعالیت تازه آتششاندمده و این به یاد شده تا رسیده. آقای دکتر بربریان یار و همکار بنیاد ملی بود یک بخشی در شمال شرقی دامغان پیدا کرد که در اونجا سنگریزه و خاکسترخسته یعنی گودازه نبوده. درست همین چیزی شонаمون داره میگه. چیزگردون بس سنگ، قهرید و خشت. چون اگه گودازه بیاد، گودازه کم کم کم کم حرکت، مثل حرکت رود میشه، میاد به طرف پایین، به هم بسته. اما اینجا میبینید شонаم سنگ وارد و خشت و درست این سنگ ها الان در بحشی که آقای دیده دیده در گنات خاکستر پیداست که اون خاکسترها آتش بوده در موقع گذاره چونی و سنگ ها هم همچنین و این نبرد دوینی سفید بوده با ایرانیان که رخ دودن چراغاه هونجا را و از آغاز آراستی چراگاه مازندران خواستید دیوی دی دی دی دی دی سفید به به کابوسی همینم میگه میگه تو چراگاه مازندران خواستی ببینید نه این کشور مازندران یا شهر مازندران منطقه و افتاندگاه مرتبا به شنامه افتان و مطالبی که واقعیت نداره خب حالا به گفت اگر دیو پول از این مرد بدخواه یا گزند نماند آمد بدیم که زنده کس تو را از هنرها زبان است و برس. اینان باید گراویی دو آمد چوشویر شو و آوردگاه دو مرد دلیر، یعنی افروسیاب. نگه کرد پیکار دو پیل مست. در آورده بر یهدگر هر دو دست. به پولاد گفته سرف را شیر به کشتی در آوری مرو مر را به به خنجر، جگرگاه او را به بکوف. بخف بکوف یعنی بشکوف. اون هر باید از کار کردن، نلافت. نگه کرد گیوان در افلاسیاب بدون خیرو گفتار و چندان شتاب. چوبشکست تیمون همی بدگمان یعنی اونا قرار داشتن که ام, ام, در حالت کسی بیاریشون نید. در اینجای می که افلاسیاب داره بیاری می آن. چوبشکست تیمون همی بدگومان برنگیخت اسب و برامد دمان. برستم چونین گفت که جنگ جوی چی فرماندهی ای. که احتران رو بگوی. نگه کن به چو جای بلا دید و جای شتاب بیامد همین تا دل افروزدش یعنی دل پراتوند را به کشتی در اون خنجه را موزدش. دو گفت رستم که جنگی منم به کشتی گرفتن درنگی منم. یقیدون که این جالوی بیخرت ز پرمانه ز پیمانه یزدان همین بگذرد شما را ز پیماشک هستن. چه باک چه آوی بر تارک خیش خالک. من اکنون سر دیو پول آتن به خوکنده رو رمز چرخ بلند، ازان پس بیازید چون شیر چهنگ گریفتان برو یار جنگین هنگ به گردن برو و زد بر زمین همی خان برکردگار آفریم. و نام که شما می کنه هم این تلاش رو این مبارزه ای انسان رو رستم رو خیلی لحظه زیبا. ما یک سال در خدمت شما هستیم می‌دونستی برنامه ما در خدمت ملت بزرگ ایران است هر بال که هر بخش از این داستان داستان های شاهنامه در خودش زیبایی زیبایی این فضال نظر روکن از طبیعت وقتی صحبت میکن از ماه صحبت میکن از خوشی صحبت، از سور آفتاب صحبت میکن. واقعا این آ این آقای پرتین ظورخانه هم فراش نکنید چون این یادگاه می ماست بیشتر از شش هزار سال یعنی این آموزش جوانان ژانی بر فراز کوه موقع که از سپ زکیان گشته بودند به کوه ها و این دشه که بالا که همینه همه دشه فریدونه دشه خیلی خیلی عجیبه مثلا یکی از اینا بابکه بابک اون رو فریدون بوده که رفتن. یا دشه که در علمود هست همه سنگی و مال زمان فریدونه و حتی وقت ازش استفاده شده پهلوانان دیگه بزرگان دیگه ازش استفاده کردن و ورزش زور خانه ای از اونجا آغاز شد زرب زورخانه زیر اون گنبت زورخانه از شیش هزار رو انتی سال زمان یاد میکنه و درست بیان میکنه که در ایران واسه پهلوانان چطور بودن کباده میل چر همه بردش زرخانه ها هم باید پر کنن های ما مردم برن واقعا یه کم شده من احساس میکنن روی بردش دیگه تبلیغات زیاده پول زیاد میدن امکانات زیاد میدن. و روز و هیچ کدوم از اینا نیست مگر که فقط کسی باشه که خودش میل داشته شدیه با آین نیحکانش برسو کنه البته پیشترم که این ورزشان نبود کسی به زرکونه ها پول نمی داد خود خودش, خودش مردونی هست بل نیاز خودشون می و زرکونه ها همواره مدارم چی داشت و می به این حرکات پروانه ها رو می و ویژگی زرخانه این بود که هر کسی که میرفت توی بود پاک میشد همون لحظه ممکن بود بیرون باشه چپوکش باشه ممکن بود بیرون کارهای دیگه بکنه ولی همین که میرفتن توی گود پاک میشدن از همه چیز هر کسی که در زرخانه بود با این نشید و با این تنی و با این اشعار روزگار میگذارند احساس بکرد که پاک و بیالایشه. من رو که که ولا سالد مسئولین ورزش کشوری انتکی به این قرب پیان و از اونها رو مجددا اگر نه ملت ایران این کار رو میکنه باز خودش من خود اما فدروسیونی هم هست من خود حضور مردم رو میگم از طریق این برنامه خودش یه فرهنگه خود رفتار بهمون خوان هستن پای نقل مرشد دیدن این ورزش و این ورزش رو انجام بدن چون هم ورزشیه که هم ورزش هست هم شما رو آماده میکنه برای میدونه یه واجه موشه دیگه شما به کار بردید در ایران باستان چی بوده که هنوزم کاربرد داره برد داره سردندار. سردندار سردندار یعنی کسی که سردم روی نخستین گفتار رو میگه نفس نخستین یعنی با نفسش گفتار میگه کسی که گفتار رو در برزش آغاز میکنه و با گفتار او برزشکاران آماده میشن برای جمعه شونه اگر اجازه بدید من سوالات رو چی تیده شد به خدمتون بگم چون این باید ما میشیم با درود بر استاد فریدون جنیدی میخواستم نسبت افراد با هم در شاهنامه را بفرمایی پاس پاس فریدون فریدون گرامی درود باشمه آخه افراد خیلی خیل بسترده میشه آره خیلی <تصفح> <تصفح> فسن... این مشهار فکر بگم این رو میخواسته مثلا توست نماینده خوراسان بوده همشه. اینکه اینکه میین ن پنجاه سال توس ایران بود مفهومش اینکه که نپنجاه سال شهر توس پایگاه ارتش ایران بود برای دفاع در برابر تورانیان مثلا گودرز گودرز کشوادگان نماینده پهلوان کردستان و آذربایجان گیوگیو گودرزان پهلوان لورستان بوده زنگهشاوران فهلوان و نماد خوزستان بوده زال رستم نماد نیروی سیستان بوده فکر میکنم یا فریبورز که در فریبورز کسانی بودن که باشندگان همین که و مرکزی بودن و کاووس در حقیقت پایترش در غزین بوده چون کاسپین کوس، یعنی یعنی شهر کاووس شهر کاس و تک میکنم این فریدون و گرامه ایران به بفرسه که من توی عرضه گفتم سوالی اومده باز هم در همین زمینه با سلام خدمت استاد جنهدی ایران کوهن شامل کدام مناطقه دغرافیایی میشده نوازهای ایرانیان آیا به همین صورت در کتیبه ها هست بوده تشکر جهانیان شاد باشید از فرغانه از درزی فرغانه که شمال شرقی ایران بوده که اکنون خوشبستانه هنوز جدو تاجکستان و نام دیگهی بهش ندادن یک سو تا میان رودان که به نام جلی اراغ رو دادن انگلیسی ها حدود 90 سال پیش یه سوی دیگه از اون سو از آسیای شغیر و گرژستان تا درگی سند و تمامی قهباز تا بالای دریای مازندران چون شما دید در... دریای مازنبران یا گرگان یا یکان یا قزر اینا همش متعلق به ایران بود شاه غیر ایرانی قاجار این رو بخشید, بخشید به روسیه این چینین هم هست که اونا تقاضا کردن که نیمی از این دریا رو بدین به ما نو شو که بعد از اینکه از همسر اومده بود به بزرگان کشورش که چه بزرگانی؟ کسانی بوده که فقط ریچ بلند داشتن. به اونا گفت که در این باره چه کنیم؟ یکی از این تظاهر هایی که توی بار منصبی داشت گفت که خوب نیست که به خاطر آب شور دریا کام دوستان رو تظاهر بکنیم. نیستو چه بگه؟ بله با همین صدگی. نیست رو دادن. خب حالا gerekته بر اساس همه قوانین بین‌المللی که دولت ما میتونه ادعا کنه چون که خود شوربی وقتی که فروت باشید شد تعهد گرفت از کشورهای که پیش بودن که تمام تعهدات شوربی باید اعمال بکنن اینه یکی از تعهدات شوربی اینه که نیمی از این دریا متعلق به ایرانه. و خب الان اگر رفتار است ایما مزاخرات باشتیم میزها و بینتیجه و اگر یک قانونی درست بود و اگر یک شهادتی بود اینجا رو قائندندی کرده به بن بله حالا شما نگاه کنید که ما یک شهری داریم به نام استراباد در کجاست در شمال شمال, در شمال. قربیه خب یه شهر داریم به نام استراباد غورکن در, چ... در کجاست در جنوب در, در جنوب قربیه دریاست اون یکی بود این جنوب قربیه شرقی دریاست استراباد غورگان جنوب شرقی دریاست یه شهرم داریم به نام آستاراخان در شمال غر... شرقی در شمال اینده. وقتی که سه گوشه در این دریا آست... آست... استراباد و آستارا و آستاراخان باشه یعنی این دریا همش ایرانیه. و ما انبوهی از تاتها و اینا داریم که ایرانی هستن که نویسنده نامدارشونم که حس هزقیل و در تاتارستان و تاتستان و اونا در اونجا هستن ایرانی هست. میگن ما ایرانی هستیم و در شمال آذربایجان شوروی کسانی هستن که فارسی سفر میکنن کشور ما ایرانه منطقه خب حالا نمیدونم 300 مداره ما باید چیکار کار در این زمینه این دریا دریا ایرانیه که ناصرین شای خیر ایرانی به خاطر اینکه اخلاق اوقات دوستان تلخ نشه آبشور بیمعنی دریا رو بخشید یک جا درود بر شما دید. آیا این شعر از فردوسیست دو ده ساله است و دو بیس سال من کنند به روز نور چاردانگی از بند شد باشین این درود به بند امیدوارم بم آباد شده باشه دوباره نه این از فردوسی میست پرسیدند پرسیدن لطفرمونده معانی واژه های سوگند قانون در گذشته چه بوده با تشکر یه کرمان درود وی از آن کرمان سوکند در عوض سوکند بند. بند یعنی دارنده سوکند. سوکند این یعنی سوزش و این ویژگی گوگرد بوده. ام، یعنی گوگرد سوزاننده بوده. و وقت اینو میخوردم. این آب گوگرد بیادم میسوزاننده بوده. اگر کسی در اون کاری که بهش نسبت بیدن واقعا بیگناه بود، اون اتقاش به اززان با اون پناهخوردن به و اون بیگناهی معتقدقش اون رو نجات میداد و اثری از این نوشابه زهراگیر پیدا نمیشد ولی اگر بر عکس کسی دروغ گفته بود این آثالش پیدا می شد و میفهمیدن که این درو در گفته بنابراین سرگند یه چیزی بود خوردنی بود و این که هنوز هم س بخور می خور اگر بخوام از این بعد این سوگند یاد کن ولی هنوز بعد از چند از آفتار میگیم سوگن بخور جالت اینه که معادل... توگن میخورم. میخورم معادل عربی اینم که قسم بوده وارد شده بازم هم میگه هنوز قسم بخوردنی میگیم قسم بخور هم. برای که سعوکند او یعنی آوی که دارنده یک گوگرد باشه سوزاننده باشه قانون واجه فارسی نیست بود برابرش دات, دات, دات ها و در زبان و در زبان یعنی قانون یعنی ظلم. با سلام خدمت استاد جنیدی خواهش میکنم جواب سوال بنده رو بفرمایید من امروز مستندی دیدم که می گفت امپراتوری هخامنشی وجود نداشته و تخت جمشید برای ما تمام و مسکونی نبوده یا حتی اشکانیان و ساسانیان نیز جعل تاریخ است. اینها دروغ تاریخی هستند نما... اینها هم تاریخی دروغت راه نمایی راهنمایی بفرمایید. فناهی از شیراز. اون کسانی که این رو این چه به کهستونو خودشون درست کردم، درغول بزرگ تاریخ هستند، نهفی همه های تاریخی کردن، اشکانیان نه تنها در گفتورهای ما، بلکه برای گفتورهای یونانیان است. رومیان ن... از اشکانیان صحبت کردن، از اهوامانیشون تو یونانیان صحبت کردن و اینا همه جزء تاریخ موس با نکات اوج کشف‌گردی بوده. در زمان عشقانیان که به گونه فیدراتیف عمل میکردن و پادشاهی تیه ها بودن. هر اسطانی برای خودشه پادشاه داشت و اینا از بین خودشون یه شاهنشان انتخاب میکردن. من الان یک چیز به شما بگم که خودتون واقعا شکسته بشید. یه نامه احولیه یکی از شهرهای خودستان به شاهنشان عشقانی می نیستن. این نامه این بوده که از پاسخش معلوم میشه که ما... دو دور ریاست انجمن شهر رو انتخاب کردیم یک کسی که دوستش داشتیم و برای بارسون بر خصاس قانون نمیتونیم اون رو انتخاب بکنیم مگر اینکه اجازه بده. این نامه نیست اما پاسخ ایشان شده داده هست اونم در دست روبهندگان و دزدان برلا باستان شناس غربی که در پاس. پاسخ اینه که با اینکه برون یود قانون نمیشه برای بارصفم این شخص ریاست انجمن شهر انتخاب بشه برگزیده بشه چون مردم اورو دوست او کار، و او کارهای خیلی خوب شخ کرده موافقت میکنیم بر بار سوم در خوبات شرکت کنه این نامه کی نوشته شده دو هزار سال پیش این اصل نامه کجاست در اروپاست چطور ممکنه که اشکانیان وجود نداشته باشند اون دروغگویی که خودش رو مشغول کرده به این دروغها میخواد یک،, یک گل بریزه تو آب مطمئن باشید که رود عرس ما با یک گلالوت نمیشه رود وحرود ما ارنگ ما کارون ما با یک مشکل گلالوت نمیشه تمام جهان در برابر به ویژه کورش سرخم کردند تمام جهان شیوه جوانداری اشکانیان رو میستایم که بر اساس حکومت مردمی بوده و زوانشون شاد و پاک امیدواریم که کارهایشون بیگه ای باشه برای انجام اگه چشم به روی